از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرجمند شرکی چهار و برنامه معرفت افتخار داریم در خدمت استاد عرجمندمون جلوه های دکتر محددی رات هستیم عرض سلام و تسلیه خدمت شما و خوش آمد میگم خدمت ممنون بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسته این اینه خیر موفق و موین من هم ایام رو تسلیهت ارز میکنم و امیدوارم که آشغان و دلدادبان و رهپویان امامان بزرگوار ما بتوانند و همراه اونها ما بتوانیم مسیر اون بزرگوار رو و اون بزرگواران رو سیره عملی و فکری اونها رو سرمشت قرار بدیم و از این مصیبت هم برای بیشتر فهمیدن و دریافتن و در اون مسیر حرکت کردن بهره ببریم اینشالله اینشالله طبقه مباحث برنامه معرفت رو بینندگان عزیز آشنا هستند و مخصوصا برنامههای که افتخار داشتیم آی دکتر خدمت شما تلمز کردیم انصافا بسیار پربیننده بوده و با استقبال بسیار زیادی مواجه شده این برنامه ها و خب دلیلش هم اینه که متقن و با مطالعه بسیار گسترده و وسیع قبلی هست که حضرت عالی این برنامه ها رو دنبال میفرمایید و ما هم استفاده می کنید. و از طرف نوع مباحثی که ما در برنامه معرفت تقدیم بینندگان عزیز کردیم و کمکان ادامه دارد مباحثی است نو و زوایایی که کمتر به اونها پرداخته شده خب مباحث عمومی رو اطلاعات عمومی رو ای رو و این گونه مباحث رو عموما در این ایام از رسانه های مختلف مردم میشنوند منابر، مساجد تکیه ها و رسانه‌های مختلف این گونه مباحث رو بهش میپردازند. اما چون مخاطب این برنامه ها بیشتر حوزویان و دانشگاهیان عزیزی هستند که خب فرهیختگان جامعه هستند و اهل تحقیق و اهل پژوهش بیشتر مطالبه میکنند که این مباحث بگونه پرداخته شود که اون زوایای پنهان این مباحث که کمتر بهش پرداخته شده اونها مورد بررسی قرار بگیره و در واقع پاسخی باشد برای ابهامات و سوالاتی که در ذهنشون هست. لذا با این مقدمه باز وارد این مرحص میشیم و از خدمت شما استفاده خواهیم کرد من مقدمتا سوال رو میخوام به این گونه آغاز بکنم که خب حضرت سن سالی هم نداشتند در طول دوران عمرشون حضرت ظاهرم 28 سال سن داشتن که به شهادت رسیدن جوانی است به تازگی به امامت رسیده و دورانی را امامت کرده و خب در طول این دوران امامت هم با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی حضرت مواجه بودند یکم برای اینکه این فضا رو بیشتر بتونیم تحلیلی وارد بحثش بشیم برای ما ترسیم بفرمایید اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم رو در اون دورانی که به خصوص حضرت امامت مردم رو برعهده داشت بله همونجور که امام علیه السلام در 28 سالگی به شهادت می رسن و در 22 سالگی امامت را به عهده می گرن. یعنی 6 سال دوره امامتشون توی کشیده جامعه شیعی تو این فرصت کوتاه فقط باید اشاره بکنم که وضعیتش بعد از جریان شهادت امام حشتوم علیه السلام چه در اون زمان یک انفتاح خاصی تقریبا وجود داشته و خود جریان ولایت اهدی با همه مباحث پیرامونی که دارد تا حدودی در برآمدن شیعه و در فضای گسترده جامعه به صورت علنی مطرح شدنش تا حدود زیادی مؤثر بوده بعد از اون در ماجرای امام نهم علیه السلام جریان متوکر و مسائل بعدی باز اون اختناق و خفقان و جو سیاه و قبارالود و اینا ادامه پیدا میکنه تا میرسد به این مرحله تو این مرحله هم باز الان این بخش رو نمیتونیم وارد بیچیم اگر وارد بشیم باز باز بخش محارف میشونی که دایره یا حکومت بنی عباس هم در این مرحله تاریخی تقریبا دیگه مرحله اضطراب و به هم ریختگی و آشفتگی و بعد حضور نیروهای غیر عرب در داخلشون حاکمیت های گوناگون و مجموعه ها اینها هم اوضاعشون تقریبا به هم ریخته است اینه که حکومت را تقریبا متزلزل می‌بینن و پایه‌ها را در هم ریخته می‌بینن این است که رقیب رو هم به این راحتی تحمل نمی‌کنن در همین مدت کوتاه امام با سه تا خلیفه است یعنی المعتز و المحتدی و المعتمد اینا همشون در فضای حاکمیتی که دارن حاکمیتشون جهلالوده حاکمیت, حاکمیت ستمگسترانه، است حاکمیت محدود اندیشانه است تا حدودی میشه و اصلا اینا تا اون حدی که یک حاکم باید اختیاراتی از خودش داشته باشد همونان هم ندارن اصلا المعتمد میگن اصلا وقتی که حکومت را به دست گرفت غیر از وقت و هرزگی و نوشیدگی و فساد چیزی به حالش نمیشد خود مادرهای المعتمدی دوریست که اصلا اینا وقتی که اطراف میان و دوربرش رو میگیرن و حاکمیت رو تقریبا فشردش میکنن با یک وضعیت خیلی عجب غریبی هم از بینش میبرن هر ستا اقدام کردن که امام را زندانی کنن هر ستا امام را زندانی کردن، و نقطه خیلی مهمی که در یک قسمتی از بحث نوع ارتباط امام با شیعیان باید ارز کنیم شگفتنگیز است که امام علیه السلام از داخل این زندان هم با بیرون ارتباط داره و شیعیان رو هدایت کرده تو یک چنین فضای سیاه و اختناق و خفقان آلودی امام ببینید باید قاعدتا اون مسئولیت هدایت فکری و فرهنگی و اندیشگی مردم رو ادامه بده امام باید با جریان‌های فرهنگی، سیاسی و اندیشگی حتی معنوی و روحی جامعه تعامل کنه و تقابل کنه با این جریان سیاسی هم باید برخورد کنه مردمی که این فضای سیاه و آلوده رو می‌بینن و میبرند و از صحنه می‌خوان دربرن و اینا رو تو صحنه نگاه داره و آماده سازی و استوارگامی. بعد خدای آمد خدمت امام که نه، آمد که امام زندان بودن، نامه نوشتن. این خیلی چیز عجیبیه. بعدش من آره میگم امام چجور ارتباط داشتن؟ هم ها که زندان بودن، امام بیرون بود باشون با ارتباط داشتن. هم امام که زندان بود، شیعه‌ها بیرون بودن امام ارتباط داشتن. نوشته بود که بله نامه با نامه با غیره نامه نوشته که دیگه اوزا خیلی به هم ریخته است و ما دیگه واقعا تماممون بریده در دوره المعتز که اولها هست اوضاع خیلی شکننده است اما ها اونجا می نیستن که خیلی ناراحت نشد بیش از سه روز دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد خاکمیتش و بعد از سه روز مطمئن باشد که این کشکه خواهد شد که همون هم میشه با یه وضع عجب و غریبی هم ای رو میکشن یه در زمانه المحتدی المحتدی وقتی که میاد سر کار بعد از این مدتی که امام را زندان میکنه با مشاورانش هم حرف میزنه و میگه که اولین کاری که باید بکنیم هر اون چه شیعه هست باید شناسایی بشه و اینها یا باید در محدودیت زندگی بکنن یا باید قلعقم بشن وقت وقتی که امام زندان هست کسی نامه مینیسته باز با همون طریق هایی که داره وارد میشن بعد امام علی السلام بهش خبر میدن که این گرفته که رو با یک حالت اینجوری قلعقم میکنه امام فرد بودن که این نظالکه لعقصه و لعمرهی اقصر و لعمرهی این حرف ها اگر بخوایم خیلی عادی معنا کنیم یعنی حرفه بندتر از دهنشه این آدم عمرش به این چیزا نمیرسه اصلا از امروز بشمورید هنجام امروز که بگذارد روز ششم دیگه این مرگه روز ششم هم دیگه این میمیره یک چیز بریم اینجوریست اون. بسیار خوب ببینید های دکتر حالا سوالاتی که در ذهن متبادر میشه این هست که از رتالی اشاره فرمودید خلفای بنی عباس کنه از دوران بنی اومعیه این وضع ادامه داشت و در همه حالا خلفا با یه فراز و فرودی فساد و ابتزال رواج داشت و اینها اهل خوشگذرانی بودند، اهل فسق و فجور بودن، اهل ظلم بودند، اهل ستم بودند. و به تنها چیزی که فکر نمیکردند حقوق مردم بود و احقاق حق و اقامه حق و اقامه عدالت و در واقع رسیدگی به وضع مردم از اون طرف اسم خودشون هم گذاشته بودن حاکمان اسلامی چطور مردم میپذیرفتند اینها رو با اینکه میدیدن زواهر امر رو با اینکه میدیدن فساد رو اتضال رو و همه این خلافکاری ها و خلاف شهرها رو از اینها میدیدند اما این لقب حاکمان اسلامی رو باز هم از اینها میپذیرفتند و شورشی نمی کردن و اون جب اختناق بسیار سنگینی رو که در دوران امام حسن عسکری ما شاهد هستیم نتونستن بشکنن و نیومدن میمدان اعتراض کنند که حضرت یک در فضای آزار و امکاناتی در اختیارشون باشه برای هدایت و نظارتشون این مردم که از این روزگاران نیست یعنی از روزگاران که هر از زمان همون امام سین و امام چهار علیه سلام بین طرف هم وضعیت ترون اینجوریه اما خیزش درونی مخصوصا تو دوره بنی عباس ماجرای حسنیون و علویون خیلی شدیده نهایت این بازی باید جامعه است. این خیلی عجیب همونطور که مفرمه بدنه کلی جامعه تا اون حالت رو داره شاع اون سالهای اول عباسیان حالا سالهای بعد که دیگه پرده ها تقریبا دریده شده بود ولی سالهای عباسیان که هنوز حتی اینا شعارهای رضا من آل محمد را داشتند در اون زمان هم این شاعر شیعی متوجه هست که بگوید که ما در چنین فضای زندگی میکنیم که دیگه آرزو میکنیم همون جور بنی امیه برگرده و ما عدل بنی اومیه اصلا نمیخوایم ولی عدر فکری شیعی جامعه همیشه با هدایت ائمه حرکتش جور دیگه است گو اینکه که در زمان نوع حیات ائمه جامعه شیعی در داخل خودش نهنجاری هایی داره ولی این حرکت همیشه حرکتی بوده که زیربار نمی رفته و بعد من در اون بحث بعدی باید اشاره کنم که همیشه برای جامعه شیعی و برای خود ائمه مسئله امامت مسئله خیلی جدی بوده من یه بار دیگه هم در این برنامه عرض کردم که البته این ابتعای با استناد یکی از متفکران و مورخان بزرگ شیعه که امه از خود علی علیه السلام گرفته تا آخر در اصل امامت هیچ وقت تغیری نمی‌کردن. درو هم درست نمی‌کردن ولی در اصل امامت تغییری نمی‌کردن. یاران نزدیکشون هم در اصل امامت تقییه نمی نمی‌کردن. حالا الان من نمی‌تونم اینا رو بگم از بحث خودمون جدا می‌شیم ولی من در یک تحقیقی چون حرف نها ای گفتنش خوبه من در یک تحقیقی متوجه شدم و نوشتم که اصلا کشتن ابن سکیب برخلاف این اسمت تاریخ مشهوری که میگوین که البته او هم بوده ولی همه علت نبوده اصلا علت نبوده که حالا بکنن از ابن سکیب مثلا که خلیفه سوال کنه که این بچه های من مهمترد یا بچه های مثلا علی ابن ابی طالب و اون هم اون جواب رو بده واق نتیجه این میشه که زبانش رو از پس گردنش بیرون بیارن این میشود گفته شاید جزء ال نبوده این اینقدر احمق نبودن که برای یک حادثه یک چنین که آدم اونچنان بلند آوازی مثل یک کیت رو که میدونید اصلا شاعر و ادیب تو همه جامعه ها بلند آوازه از بین ببرن برای یک چنین چیزی ماجرای بسیار بسیار مهم این بوده که کمیت مهمترین آدمی بوده که در شعرهاش مهمترین شاعری بوده که ولایت رو و امامت رو و رهبری رو و خلافت حق رو و حق خلافت رو مطرح میکرده و خلافت جور رو و جامعه ادبی وابسته به دربار شعرهای کومیت رو تحریف میکردن و این قسمت هاشو یا ور میداشتن یا چیزای دیگه جاش میداشتن ابن سکیب به جای اصلش بر و حرفش قابل پذیرش بود یعنی وقتی ابن سکیب میگ این باعث مهمی بود که مثل کید رو سرونیست کردن که دیگه این هر اتفاق نیفته و این کار اتفاق نیفته من اتفاقم بعدها در قلم آقای داوود سلوم دکتر داود سلم که از متفکران قابل توجه عراقیش که من نمیدونم احتمال قوی هم میدم سننی باشه اصلا شیعه باشه، اونجا در بیان اون دیدم در مقدمه تهذیب المنطق که به سراحت نوشته است که بطل ابن سکید به خاطر این ماجرای کوچک نبوده و اون به این جهت بوده که بر میگردان چهره کمیت را و شعر کومیت را به اونجایی که بوده بلاخره شاعر شیعی، امام شیعی، جامعه شیعی همیشه حرکتش اینجوری بود ولی این فضای کلی که از روایات امام باقر رای سلام به این طرف نوعا تعبیر به ناس میشود و هر وقت مثلا امام میفرماید ما یقول و مراد همین شبکه عام مخاطبه اونا بله اونجوری بودن. بسیار خوب آنهای دکتر ببینید ما وقتی که تاریخ اعمی اتخار رو و امامت ائمه بزرگوار رو بررسی کنیم در این امامت فراز و فرودهایی رو ما می از دوران امام علی علیه السلام که خب حالا حضرت موقعیتی هرچند محدود و مختصر و موقت به دستشون اومد و از این موقعیت استفاده کردن برای اقامه حق و عدالت که بعد هم قتل علی و فی مهراب عبادتی به بعد دوران امام حسن به وجود اومد و حالا اون فضاهای سنگین در دوران امام حسین ادامی اون امام سجاد ادامی اون تا زمان امام واقع و امام صادق که وضعیت بهتر شد و اون دو بزرگوار از این فضا بهترین استفاده رو کردند و انتشار دادن نقل احادیث رو و معارف اهل بیت رو اما بعد از امام صادق دوباره فضا برگشت دلائلی داره البته قابل بررسی هم هست امام موسی کازم دوباره در همین جب اختلاق بودند اما در دوران امام رضا فضا به ظاهر به اهل بیت برگشت و امکاناتی تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفت چه عللی چه عواملی باعث شد که این اختلاق با حد بسیار زیادش در دوران امام حادی، امام جواد، امام حادی و امام اسکری ادامه پیدا کرد و این در واقع مشی اختلاق و دیکتاتوری و فشار زیاد و نظارت سنگین بر اعمی بزرگوارمون کماکان ادامه داشت به حدی که امام حسن رو در محل اسکر در واقع زندگی می کرد و تحت نظارت مستقیم و شدید حکومت بود شاید برداشت من این هست که بی یک دلیلش حضرت اشاره فرمودید و اون اینکه که پایه های حکومت بنی عباس متزلزل شده بود و همین تزلزل باعث نگرانیشون شد و رقبار رو نمیتونستن تحمل کنن آیا برداشت من درسته و بعد هم دلائل دیگری هم دارد یا نه این طبیعیه یعنی از همون زمانی که شما تاریخ رو یعنی از بعد پیغمبر اکرم که این ق لا یاد نمی‌کندا. حاکمیت وقتی اون طرف شکل میگیره خلافت که به تعبیر اولعلایه موجودی، علامه اولعلایه موجودی دیگه وجود نداره. میشه ملوكیت، میشه پادشاهی. این تعبیر تعبیری شونه، تعبیر, تعبیر ما نیست. ایشون ای بیان خیلی مهم دارند در یک کتابی به نام «الخلافت والملوكیه» و معتقد هستند که پیغمبر اکرم خلافت کردند. خلیفه اول دوم خلافت کردم علی ابن نوی خلافت داشته دیگه بعدش سه و موقع دیگران پادشاهی بوده خلافت وجود نداشته و قیصری بوده و کسرایی این قیصری و کسرایی هیچ وقت بلش به هم نریخته گاهی یک دیگرگونی های ایجاد شده اگر هم مأمون در آغاز به خاطر جریانات خاصی که وجود داشته و مرکزیت خاتمیتش آمده بوده به ایران و خراسان و اونجا ماجاره های دیگه ای بوده امام رام آورده بودن اونجا و تو سطح ظاهری جامعه اتفاقاتی از طرفشون میفته بعد آرام آرام می بینه نه اینم پیش نمیره. و اون نامه های مهمی که دوربری خودش بهش می و اعتراض می‌کنن که تو اون چیزی که بخواستی بهش برسی نرسیدی که این چنان میپنداشته که اصلا پایه‌های های بنی عباس رو سفتر خواهد کرد شلتر بشه وقت نتیجه همون کاری می کند که دیگران کردن وقت بعدش دیگه تو دوره امام جواد علیه السلام که ادامه کار اویه خاتمیت شدیدتر. شدیدتره اون شعاری را که هارون یک روزی کنار پسرش مأمون در نوع برخورد با امام موسی جعفر علیه السلام دادن که الملک عقیم و براخره حاکمیت یوارچی این مادر حاکمیت یوار این سلطه رو و این حکومت رو به دنیا میاره همیشگی که نیست که نباید و اینها واقعا گرفته بودند و همیشه هم تزلزل هایی که در میان اینها به وجود میاد باز هم از این حواشی است که اتفاق می افته. یعنی یعنی می کنیم که جامعه در مجموع اون بدنه کلیش با اون مسیر حرکت می‌کنه. این زاویه هایی که این طرف قیام های اتفاق می که بعد از قیام ما عبدالله حسین علیه السلام پی در پیه حالا بعضی اشراد کمی درش حرف باشن ولی قالبا قیام های پاک و منزه و جالب توجهی هستن دیگه کاری را از پیش نمی تونم ببرن قاطعه تن ا خیلی متشکرم و بحث ما در این برنامه پرداختن به زندگی نامه و در واقع شناخت بیشتر سیره امام حسن اسکری علیه السلام هسته هرچقدر در زندگی این بزرگواران که پر پرنور و پرتلعلوع تشیع هستند و پیشروی روی سعادت بشر هر چقدر بیشتر غور میکنیم و رسیم میکنیم تنکاش میکنیم زوایای پنهان جدیدی برای ما باز میشه که اونها میتونن برای ما راهگشا باشند و در ادامه مسیری که در زندگی دنیایی داریم میتونن ما رو کمک بکنند. ما هم در این برنامه سعیمون همین هست و افتخار میکنیم در خدمت آیدت و محتدیرات هستیم و مبحث را با این زاویه و نگاه دنبال خواهیم کرد. تغازه میکنم یک میان برنامه را به اتفاق ببینیم و برگردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما و فی که بیاید چو تو به نباید به زهج جان من اکنون به نبرسی آخو برنامه معرفت در خدمت شما هستیم و بخش دوم این برنامه را تقدیم حضور شما میکنیم و افتخار داریم در محضر استاد ارشمند من آی دکتر مهدویراد هستیم در بخش قبلی آی دکتر اشاره فرمودند به سیره امام حسن اسکری علیه السلام و مقدمه بحثمون این شد که فضای فرهنگی اجتماعی و سیاسی دوران امامت اون حضرت رو بررسی کردیم و دلائل برخورد بنی عباس اون هم برخورد بسیار سخت و شدید حاکمان بنی عباس رو با اون حضرت بررسی شد و علل و دلائل اون رو و میخوام خیلی سریع آقای دکتر بریم سراغ بحث بعدی اون که فرصت من هم کم هست و محدود حضرت در دوران امامتشون با فرقه ها نهله ها و گرایش های مختلف فکری و مذهبی مواجه بودن حالا به نوعی تمام ائمه ما با این گرایش ها مواجه بودن اما در دوران امام حسن ازگری یه ویژگی های خاصی داره و نوع برخورد و پاسخ و یا مقابله و دفاع حضرت هم با این پرقه ها متفاوت هست و بسیار پررنگ میخواییم با از زبان حضرت عالی بشنویم و آشنا بشیم با این گول فرقه ها و نهله و نوع برخورد امام با اون نگاه هدایتگری و نظارتگری و تیزبینی که حضرت داشتم بله عرض باشم که من چون خودم هم فکر میکردم شاید فرصت خیلی نداشته باشیم برای این بخش بعدی یادداشت کردم که سری بخونم و من امیدوارم که بینندگان بسیار عزیز و فاضل و فرهیخته اینا اینا رو پیگری کنن جالبه از اینجا آغاز می‌کنم و عناوین رو میگم و میگم مستندات تا اینها بسیار زیاده ببینید خیلی هم شگفتنگیزه هم قرور آفرینه هم دلپذیره هم شکننده و قم آجینه. همه اینا هست که امام شش سال امامت کرده. در این جامعه اسلامی از آذربایجان و نیشابور و بغداد و مدینه و همه جا بگیرید که این شیعه ها پخشن شبکه های ارتباطی هم که وضعیت امروزی را که نداشته الان ما میخواییم بگیم که امام به همه این جامعه شیعه اشراف داره همه جرایان های فکری را میپایه همه نوع هدایت ها را میکنه امام علیه السلام بعد از اون بزرگوار باید ماجرای غیبت اتفاق میفته. همیشه بحرانی ترین مسئله جامعه مسئله امامت بود. زمان امام صادق علیه السلام هم که اون همه حدیث و کثیر آمده باز هم امام مسئله داره به خاطر فضای سیاسی و لذا به جای اینکه یک نفر وصیت کنه به ظاهر شش داره و تفه میکنه که مثلا امام علیه السلام در حوزه امامت یک روشنگری کردن در اصل مسئله امامت دو. چه های دکتر؟ مطلب دارن نامه نوشتن الان در بخش بعدی ارز خواهم کرد که چه نامه های امام نوشتن به عباد مختلف وکلهایشون و اون نامه ها چجور فرق شده خب باید مسئلهی که تا حالا کاملا زیر پرده بوده و جز اده بسیار اندت نمی آرام آرام مطرح بشه یعنی ولادت امام زمان علیه السلام و امامتش امام شروع کردن اول بشارت دادن به حواس شیعه که این اتفاق در میفته ده احمد اسحاق گفتن که الحمدلله الذي لم یخرجنی من الدنيا حتا ارانی الخلف من بعدی اشبه الناس برسول الله خلقا و خلقا من مندم تا اون بزرگوار رو ببینم بعد روز سوم ماجرا به احمد ابن اصحاب امام میفرمایند یک ادهی رو جمع می کنند که ده بیس نفر و در میان اونها امام مساله رو مطرح می کنند یک کمی میاد این طرفتر چهر نفر از اصحاب خالص رو امام علیه السلام جمع می مساله رو میان اونها مطرح می کنند. ولی باز میگن که قفعا این رو در فضای کلی مکتوب داشته باشید اونجا دیگه چهره مبارک امام رو در همون خرسالی و در اون امام با همین وضعیت در تمام اونچه که در جامعه شیعه و روز می‌گذشته چه از داخل زندان که خودش زندانی بود و شیها بیرون بودن چنان که عرض کردم چه از بیرون زندان که ایشون زندانی بود و شیها بیرون بودن و شیها در زندان بودن ببینید یک امام مرتب با شیها در ارتباط بود به چهره‌های برجسته‌ای که در تیررس هجومه دشمن بودن امام توسلی میکنه که آرام باشید ساکت باشید حرف نزدنید به بنده خدایی که الان من خیلی باید کوتاه بگم قصهش رو یک عصا میده به امام امام ایشان یه عصا میده میگه رو برسون به امری این بنده خدا میگه من سوار مرتبم بودم حالا الاغ بود یا اسب بود داشتم میرفتم یکی از اینهایی که من میشناق با شطور از مقابل آمد و بر من تعرض کرد خب منم قاعدتا در مقابلش ایستادم آرامم بودم تا وقتی که به امامم دوشنام داد، من ناراحت شدم با این اصا که مدور بود زدم بر پیشانی شطور این آدم بنابود بود. ای رو من برسونم به امریکا از اصحاب بزرگ ما بود یه مرتبه دیدم که وسط این اصا پر کاغذه یه اکاس شکافته شد سریع نکردم تو آستینم و هرچه او به من دوشنام داد دیگه به توجه نکردم آمدم که برم از جلو خانه ما هم می شدم. امام کنند میشدم بیا. وارد خانه شدم امام هم من دید گفت از اینجا به بعد هر کاری را که میگم همون رو انجام بدید و هر اتفاقی که افتاد حاشیه نرید بدونید که من اوضاع حال شما رو میدونم اخبار شما رو هم من خبر دارم این مجموعه اطلاعات به پیام رسانی و پیامرسانی و خبررسانی هایی بود که وسط این عصا بود نزدیکترین ادم امام و تو این عصا چه خبره کمک های مالی امام غیر از اینکه مثلا قرارکش گرفتار برش فرستاده اون یکی گرفتار براش فرستاده اون یکی مشکل مالی داره ورشکست کرده براش فرستاده چهره های درجسته پاک و دارد داره که درشون قول امروزی ها مثلا تنها گذاشته که هر وقت کسی مشکل داشته باشد بهشون برسونن از داخل زندان یک چیز خیلی جالبی که هست در اون زمان اینها ماموران زندان ها را غیر عرب میذاشتند و مخصوصا ترک ها وقتی که شما جنبش زبان اینها اینا خیال میکردم، اون باوری که من و شما داریم درین که, که به امام نداشتن خیال میکردم دیگه امام نمی‌تونه با این ارتباط برقرار بکنه امام در کوتاهترین مرتد هم ارتباط زم مت ارتباط زبانی برقرار میکرد. ارتباط عاطفی اینها میشودن آملان نامرسان امام بیرون و از بیرون به امام اینجا یه روایت می‌خوام نقل کنم که دیشب و کارشان تلاش کردم عبارت عربیشم پیدا کنم و تصبرا پیدا نکردم ولی خیلی روایت عجیبه طرف نامه می نویسه به امام که آقا بر ما خیلی سخت میذرد ما گاهی در بعضی از مسائل مشکل داریم نرک را کنیم امام در جواب مینویسن که آب را از سرچشمه بگیرید که طرف علیخدا نامه بی دست افتاد ندیدن چه خبره آب را از سرچشمه بگیرید دو این نامه مینیسه که اگر بین ما و آب فاصله انداختن ما چیکار کنیم امام فرمودن اخلاص پیشه کنید آب خودش پیش شما خواهد آمد یعنی از اینجا هم امام مرتب به یک فرد میگه این شب خانه فلانی اینا و اینا و اینا را بیگه بیان اونجا میان امام دستورات را صادر میکنه شما باید این کار بکنی شما باید این کار بکنی شما باید این کار بکنی و بعد ازشون جلا میشه نظام وکالت هم همارد به سرعت از میکنم نظام وکالت از زمان امام چهارم علیه السلام شروع میشه حالا از دین متفکران مورد ما کمی مورد مگه موعظه معظّم رهتری به شرافت پایل همون زمانی که ما پای درسم بودیم میفرمودن بعد در اون کتاب کوچک پیشوای صادق هم که از اون زمان بعضی از فاضلان ما و مورخان ما معتقدند از زمان امام صادق علیه السلام شروع میشه حالا اینش خیلی مهم نیست ولی سازمان وکانت در زندگی ائمه خیلی عجیبه این ارتباطات حالا ببینید امام علیه السلام در این دت کوتاه با تمام سرنخهای جامعه شیعی ارتباط داره نامه نوشته به احمد بن اسحاق که شما باید کار انجام بدید بعد اون شیعه بزرگواری که در بیهق بوده چون اون در نیشابور بوده خبر رسیده به امام که انگاری شما خیلی خوب نمی نامه نوشته بهشون که شما با احمد بن اسحاق باشید و بایش مشکل نداشته باشید و ابراهیم بن عبدو با ایشون باشید چون اون در مدینه بود مشکل نداشته باشید بیحق نیشابور و دوره بری بیحق و نیشابور هرچه از شیعان ما هستن در ارتباط با هم ماشن این سازمان فقالت عجیبه مثلا ده نفر تو این دهن یک نفر دارن این متصل میشه به شهر بزرگتر اون متصل میشه به مرکزیت مثلا خراسان اون متصل میشه به مدینه اون طرف از آذربایجان. بله بله به ص و این روکلا هم کارهای دینی مردم انجام میدن هم کارهای مالی انجام, انجام میدن هم کارهای قضایی انجام میدن حاکمیت دستگاه قضایی داره ولی اینا خودشون زیر طرز کارهای قضایی رو انجام میدن نمیذارن که برسه به دست اونها و جالبینه که گاهی حاکمیت متوجه میشه و توطعه میچینه که این وکیلی را که موقعیت داره از چشم این جامعه که دور برش هستن هم گفتن امام بنا فاصله به اون مرکزیت نامه مینیوسته که این نامه رو به این شیعیان پخش و در اون نامه تطریح میکنه که این مورد اعتماد و کسی حق نداره که نسبت به ایشون مشکل داشته باشه که این کار درباره همین ابراهیم ابن عبدوی نیشابوری انجام میشه این در نیشابور هست و دوربر نیشابور احمد ابن اسحاق در قم هست و درور قم قاسم ابن علا در آذربایجان است و دوربر آذربایجان اورکت ابن در بغداد هست و دوربر بغداد هر منطقه هر یه مرکزیت بزرگ دارد چیزای کوچک هم باز متصل میشن به اینها خب در زمینه بحث کردیم ها این ها چیزای عجیبیه اون چیزی که ما در اختیار داریم یه بخش عظیمی خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای شیخ علی احمدی میانجی رضوان الله تعالی امرز علی اقا چه واقعا مرد پاک بزرگ محقق بی‌نظیر بود دیگه این بزرگوار یک همت والایی به خرج دادن و های ائمه رو جمع کردن با عنوان مکاتیب که قبلا مکاتیب پیامبر رو جمع کرده بودند من با تأملی که کردم هفت تا مسئله مرکزی رو عرض می‌کنم چون نمی‌تونستم ها رو اینجا بخونم یکی یکی یک این نامه ها به صورت شگفتی آمیخته به قرآنه به صورت استناد، استشهاد، تلمیح یعنی با قرآن مطالب به مردم عرضه شده دو، این نامه ها به صورت عجیب واقع نگری داره یعنی امام در یک جامعه مثلا اعلان مدینه فاضله افلاتونی حرف نمیزنه میدونه یک جامعه ایس مشکلت داره، ناهنجاری داره، فراز داره، فرود داره، دروغ داره تفرقه داره، بدبختی داره این ریز وارد میشه و مردم را به شیعه را هدایت میکنه سه دو تا وحدت رو امام در این نامه به اینها توجه میده تشکل و وحدت خودتون در داخل خودشون و مجموعه جامعه شیعی نسبت به جامعه بزرگ جامعه اسلامی که تفرقه ایجاد نکنید و دلوا درست نکنید رفتار انسانی الهی این نامه‌ها توصیه دارد که شما باید بهترین باشید، شما باید پاکترین باشید. من در این کتاب یه نامه‌ای را گذاشتم علامت که اگر درسم بخونم، اگر نرسیدم هم که دیگه نمی‌مونه. ایثار داشته باشید نسبت به هم، از هم مایه بگذارید نسبت به هم. هر کسی برای خودش نکشد، اون یکی دارد مخلب اون دیگر کشافت ننگار. نسبت به هم فکر بکنید، راه مهربانی توجه به امام امامت یوم یدعو کلا اناسیم با امامهم این زمین یک نامسا یوم یدعو کلا اناسیم با امامهم و کذالک جعلناكم امتا وسطا لتكون شهداء على الناس و یکون الرسول عليكم شهیداء و اینوز یکون الامام عليكم شهیداء و شما من گواه بر شمایم نوع زندگیم و شما گواه بر امت باید باشید شما باید جوری زندگی بکنید که وقتی به شما نگاه بکنم احساس بکنن که این آدم آدم که او تربیات کرده کنتم خير امتم شما الان اون بهترین امت هستيد اخر جبل الناس. ای کنتم خیر الامه ان اخریجت لناس میده که همه جامعه اینجور نمیتونن باشن مگه یک گروه متشکل متفکر هوشمند محوردار انجورین امام داره میگه شما نباید انجور باشید شما باید چین باشید و دیگران امر به معروف نهی از منکر بکنید نه خودتونم به دنبال فساد برید حالا برگردیم از این مسیر که حرکت میکنیم به اون سوال ببینید تصوف در زمان امام گسترده در زمان ائمه قبل اینقدر گسترده نبود این آرام آرام که شروع شده امام علیه السلام در یک نامه به شیعیان نوشتند انهم نه هم خلفا و ولی ظاهرش هم ظاهرهای خیلی مثلا آرف نسلک و منظم و مرتب بودن و مخرب و قواعد دین اینها پایه‌ها و بنیات های دین رو در هم می ظاهرش این است که ذکر ظاهرش این که تصمیح می اندازد. ن ریت هزه دون لراحت الابسام اورادهم الراعز از کارهم اترنم و تکنیا زکر میگوید راعف را میگذاره زکر میگوید سماخر میگذاره و نیز میگوید تنامی کند امام در مقابل این جریان ایستاده آدمهای وجود دارن که امام اسمشون رو برده. حالا امام صادق عليه السلام فرموده بودن این نهوم اعداونا واقفیه بعد از امام هفتم عليه السلام بر امامت هفتم گردن نمی و بعد جرایان وقف رو و واقفیه را شکل بیدن بنده عرض کنم فضلا می که یه بخش قابل توجهی از راویان ما واقفی هستند. حتی در دوران واقفی بودنم هم چون بعد انسقه بودن روایات چون ما می این لیستی که از واقفیه می گیریم معلوم میشه که اینا چه فضایی رو از جامعه فکری با داشتن امام باید چجور این جامعه رو هدایت بکند که اینی که ظاهرا اسمش شیعه گذاشته و امامت امام هفتم هم گردن نهاده الان نهاد بعدی را رو رفته و در جامعه از این زاویه داره حرکت میکنه به شیعه نشون میده که اینا رو موازی باشه که اونی که من شما میگی نیستن ماجرای دیگر اندیشی علویون و امثال اینها قالییان و غزافگویان که اگر فرصت می‌نمید توضیح میدادم که با صادق چه نگرش لطیفی دارن امام حسن عسکری وبخت امام حسن عسکری علیه السلام در مقابل این قالیان ما غالبا وقتی میگیم قالی فکرمون این میشد یعنی کسی که علی علی السلام رو به امر می میدونسته اینا کمترین تعداد قالیا بودن همیشه مهمترین چهره های قالیان کسانی بودن که ابا را میداختن و بعد می میرسیدن که به مردم و دور و برهاشون و خودشون میگفتن وقتی گفتی علی و محبتش را آوردی و معرفتش رو تمام شد بعد دیگه هر غلطه مخواهی بکنی بکن وقت امام در مقابل اینها اون نامه را نوشته که نه قرآن محور قرآن داشته باشید و از قرآن جدا نشید و فضای تاریک سیاه عجب و غریب جامعه خودشیه بسیار زیبای در حدایت و در واقع تاریخ میگن عبرت آموز هست و تاریخ میتونه برای های بعد از خودش درس آموز باشه. بناید تو وقتی که این کلام حضرت علی رو داشتی توضیح می و می تو ذهنم این صحنه ها متوادر می شد که این قلوبی که حضرت علی بهش اشاره فرمودید الان هم هست من درست الان هم ما در برج ما قلوبی که آخر اشاره کردن می الان هم به چهره های مختلف ممکن ممکنه ظواهر مختلفی داشته باشه افراد و تفرید در جوامع اسلامی حتی در میان جوامع اسلامی حتی در میان متدینین ممکن به اشکال مختلف خودش رو نشون بده الان ما در بعض از کشورها داریم کسانی به نام علویون نماز نمی خونن با اینکه شیعه هستند جالبه و با اینکه متدینن با اینکه منتصر به تفکری به نام شیعه هستند اما از ظواهر اصلی دین بدورند اینها جایی بررسی داره که چه میشود اینها به این نتیجه میرسند به این تحلیل میرسند و خودش رو راضی میکنه به عنوان یک متدین به عنوان یک فرد با دارای تفکر شیعی که نماز نخواند و حالا در دوران حضرت امیر هم به شکلی دیگری بود در دوران امام حسن علیه السلام هم به شکل دیگری بود و الان هم هست و آنچه چه مهم است اینه که اون نکتهای که اجتالی اشاره فرمودید چقدر زیبا بود که حضرت در هاشون در اون نقش هدایتگری و امامت خودشون به مردم متذکر میشدند که مهوریت اصلی رو فراموش نکنید اگر دست از مهوریت اصلی برداشته بشه شالوده کار از هم میپاشه و من هم باز میخام از همین نکته استفاده بکنم که در دوران فعلی ما در دوران روزگار امروزی ما هم زندگی و سنت و سیره امه بزرگوارمون قابل استفاده هست و باید از اونها درس بگیریم از سنت و سیره امنه بزرگوارمون الگو بگیریم و اونها رو در زندگی خودمون اجرا بکنیم توصیه های حضرت نه برای مردم زمان خودشون اونها امام کل زمانها و دورانها هستند. و اگر حضرت توصیهی دارن نامههایی دارند دارن و تذکرهایی دارن برای ملت و مردم و دوران خودشون این تذکرها برای دورانهای بعد از خودشون هم هست در دوران امروزی ما اگر ما مهوریت رو فراموش نکنیم و دست از مهور اصلی ادامه امامت که ولایت فقیه هست بر نداریم قطعا جامعه دچار تزلزل و اشتباه سوء برداشت نخواهد شد و به سلامت خواهد رسید و به سرمنزله مقصود آیا دکتر آخری لکتر رو استفاده کنید از میشید که من چون این نامه را که انتخاب کردم برای اینکه عرض می کنم الان فرصت کافی ما نداریم اصلا تو قلوب به نظر من اونی که بسیار خطرناک بود رسیدن یک عددی ای از جامعه شیعی به اینکه وقتی که گفتن من محلی هم دیگه تمام شد این میباید اینا خیلی مبارزه کردن این نامه فان بخشش در همون جهته در حالی که میگن شرم از علی کنه من هر گناه این مهمه دیگه میگم اصلا اون جریان قلوب واقعا هم خیلی کم بود اوسی کن به بتقوالله امام علیه السلام به اینا نوشته اگر شیعه مایت باید ما باشد گیر باشه دیگه تقوا ولورع فی دینکم ولاجتهاد لله این اجتهادی که اون زمان وقت تو روایات می اومد این شدن نیستا. یعنی تلاش و کوشش سخت بوشانه و خصنی ناپذیر در راه دین خدا صدق الحدیث راست بگید دروغ نگید. نگید خیلی چیز مهمه فقرام دروغ نگید خیلی از درست میشه ادا الامانته الا من تمنكم بر نافاجر هر کس شما را امین دونست امین باشید باش، میخواد فاجر باشه خب که باشه یک قسمتشو میذارم اتق الله تقوا پیشه کنید. و زینت ما باشید باعث آبروزی ما نباشید ولا تکونو شینا وقت امام علیه السلام ادامه میده عکس روز ذکر الله یاد خدا را داشته باشید ذکر مرک یاد مرک رو داشته باشید و تلاوتل قرآن بعد وقت امام علیه السلام فرمودن که اینی که من رسیت کردم برای شما حفظش کنید من باز با شما خداقضی میکنم به شما سلام میرسنم ببین چقدر لطیفه امام من به شما یارانم شیعانم سلام میرسدم این برای شماست و برای هرون کسی که بر این نامه من اطلاع پیدا می کند و ازش اطلاع میگیرد در واقع مخاطب امام, امام, امام ما هم هستیم و من باز یک تاکید اضافه می در آخرین جمله یک مخاطب ارز کنم این است که احمه علیه مسلم الان تو ها دوستان دانشتیوان شاگردارگاهی به ما میگن که خب این های عجیب و غریب هم آمده دیگه چه کار کنیم نمیدونم معرفت عرفان عرفان نظری عرفان عملی بارها گفتم اگر هر کسی فقط کلمات امام صادق علیه السلام رو در خط تحف العقول که ترجمه شده بخواند و مثل امامش سعی کند عمل کند دلالله العظیم عرفان میرسد به اون عرفانی که او را به ملکوت ببرد میرسد چون معراج و اووج از عمل برمیخیزد در اون آیه کریمههم فرمودن که این عمل هست که عمل صالح هست که خود انسان را برمیکشد امام صادق علیه السلام هم بارها فرمودند که شیعه ما اهل عمل است اهل تلاش است اهل فتح است اهل های بزرگ است و پیروزی بزرگ و فتح جز با عمل و تلاش و سرکوشی پیش نمیاد سلامت الله و سلام او بر امام حسن العسكري ام. علیه السلام که ارکدم تکرار میکنم شش سال امامت کردم تو این شش سال تمام این فضای جامعه مثل دو تا کف در اختیارش بوده با اینکه بخش اعظمش در زندان بوده و از اون دور زندان جامعه ای انسانی و شیعی رو به ملاکوت می‌رود. خیلی ممنون دکتر